میدانید چرا همش را برای شما میگویم برای اینکه پس از او در اون جلسه کارگاهش شما سومین مردی هستید که وقتی به من مینگرید احساس میکنم که چشم به چشمهای من ندوخت و تن مرا طلب نمیکنید اولی استاد بود سومی هم من هستم دومی کیست دومی هم همان کسی است که استاد را به من شناساند او هم دیگر برای من وجود ندارد از این جهت من هیچ شرم نمی کنم و می خواهم همش را برای شما نقل کنم. چشمه را بس و من نگاه خریداری به تنمو انداختم. بینی کشیده، زولف های مشکی چیندار، لپ های و لطیف و بزک کم، اندام مناسب و لوکمی کوتاه، ساخهای موزون، همه اینها زیبا و فریبنده بود، اما راست می گفت. این نخستین باری بود که زن زیبا را تماشا می کردم فوری دختر جوان نوزده ساده ساله را که تنها در خیابان پاریس گردش میکرد جلوی خودم دیدم برای اینکه نگذارم این حالت غم او مرا تحت تأثیر بگیرد کشمکش کردم و گفتم خیال کنید که من اینجا نیستم خیال کنید که تنها برای خودتان حکایت می کنید حتی نگوید که من چنین و چنان کردم بگویید که آن دختر 20 ساله اسمش را فرانگیس بگذارید اسم خودتان که فرانگیس نیست گفتید آن دختر بیست ساله تنها به فرنگستان رفت نه من نمی خواهم داستان زندگی خود را نقل کنم در زندگی من هیچ چیز تازه ای نیست من زندگی نکردم زندگی من همان است که دختران طبقه من داشتند آمدند و رفتند مزه خوشبختی را نچید، نچشید و واقعیت آن را ادراک نکرده درگذشتند چه چیز من میتواند برای شما جالب باشد؟ به علاوه سرگلش من هنوز تمام نشده من فصلی از کتابی هستم زندگی من فقط تا آنجا که مربوط به زندگی اوست جالب است. اگر او نبود من هیچ بودم آخ او بود که شبهی از زندگی واقعی انسانها را به من نشان داد و من از فرت ضعف کور شدم و نتوانستم لذت زیبایی آن را بچشم من میخواهم رابط خود را با او بگویم بگذارید کمی فکر کنم در سال 1930 گمان میکنم در اواخل سال سی در فرنگستان بودم یکسر از راه روسیه و آلمان به پاریس رفتم در ایسگاه سرهنگ آرام به پیشواز من آمد در پاریس در اکولدس بیوکس اسم اسم نوشتم و خیال میکردم که دارم درس میخوانم و نقاشی یاد میگیرم برای ورود به اکولدس بیوکس آردس باعثی مسابقه ورودی داد اما در فرانسه برای خارجیان همه کار آسان است خارجی ها همه چیز میتوانند یاد بگیرند اگر چیزی هم دستگیرشان نشد دیپلم را در هر صورت گرفتهاند یکی دو سال طول کشید تا زبان یاد گرفتم اما بیشتر طول کشید تا فهمیدم در چه گندابی گیر کردم ظاهرا زندگی برای من همهاش بازی و تفریح و سرگرمی بود اما در باتن همیشه خود را بدبخت میدانستم و نمیفهمیدم که چگونه میتوانم از این ضلت رهایی یابم ببینید خیلی بله ها آدم در زندگی به سرش می آید و خودش مسبب همه آن هست. منتها ادراک نمی کند یا وقتی به ریشه آنها پی می برد که دیگر کار از کار گذشته است. مال من اینطور نبود. بهترین لذت ها وقتی تکرار شد زجر و مصیبت است. تفریح و ولگردی من اجباری بود. من نمی خواهم خودم را تبرئه کنم. از آن سرهنگ آرام که بزرگتر و سرپرست من بود تا آن جوانک بیمزه فرانسوی که از ریختش بیزار بودم همه هر کدوم به نحوی میخواستند شوهر موقتی یا دائمی من باشند من گناهی نکردم که لازم باشد در مقابل هر انسانی هر انسان با وجدانی خودم را تبرئه کنم نه قصد من تبرئه خود نیست مقصود این است که شما با این مقدمه حالیتان شود وقتی به ایران برگشتم با چه احساسات و با چه طرز فکری با او با این استاد شما مکان، با دوست، با رفیق، با مرد دلخواه خودم روبرو شدم. هر لذتی وقتی دوام پیدا کرد و مصیبت است. خب، فکرش را که بکنم. ریشه بدبختی من در رفاه و است که از توفولیت در آن نشو و نما یافتم خوشگلی من بدای جان من بود خوشگلی به اضافه زندگی بی دردسر. این دوتا با هم دست به یکی کردند و مرا به این روز سیاه نشاندند شهرت، افتخار، احترام همه اینها خوب، سودمند و کامیابی است اما هر آدم مشهور دلش میخواهد گاهی میان جمعیت گم شود میخواهد میان مردم بلولد لذت‌های آنها را بچشد دلهوره آنها به سرش بیاید. آن وقت رفاه و آسایش برایش لذت بخشتر است. اما وقتی همه کس او را میشناسند و همه مردم او را به انگشت نشان می دهند، دیگر آزاد نیست. آن وقت دیگر شهرت دردسر آدم می شود. خوشگلی من همانطور بود. من در Ecole Diskes پروفوسور پیر هم که با من صحبت میکرد بیشتر به چشمهای من مینگریست تا به کار ناقابل من اصلا فراموشش میشد که به من باید درس بدهد بی خودی و نادانسه از کار من تمجید میکرد دانشجویان سر من با هم دشمنی خونی بودند هر کدام یک لطف سرسری مرا رو به رخ دیگری میکشند چقدر دلم میخواست در مدرسه کار، آنجا که دل من از فرط شوق می تپید، آرام بودم در آن زمان هنر نقاشی برای من جای هر انایتی را می میگرفت عشق، شوهر، افتخار، احترام اینها در مقابل شعله شوق هنر دود قلیز ای بودند یک روز در کارگاه مدرسه ناگه هم متوجه شدم که بیشتر دانشجوان دارند طرح صورت من را میکشند این اواخر که با سرهنگ آرام به مجالس شبنشینی سفارتخانه ها و وزارت خارجه فرانسه می رفتم روزنامه نویسها داشتند از صورت من پول در می آوردند. یک جوجه نویسنده فرانسوی یک رمان درباره من نوشت. سر تا سر داستانش شرح عشقی بود که به یک دختر هندی در دل می پرورند. در تئاتر، در سینما، در کنسرت، در گرگش های عمومی، در یه در سخندانی ها، هر جا می رفتم همه چشم ها متوجه من بود و از این وز زجر میکشیدم. همه مجیز مرا می گفتند. از همه بدتر رفتار همبتنان خودم بود آنها که دست،, دست رد به سینهشان زده بودم همه جا پشت سر من آنچه ناشایست بود می گفتند. حتی ایک از آنها نامی به پدرم نوشت و داستان ها از من نقض کرد که باور کردنی نیست. پدرم مرا خیلی دوست می داشت و از همین جهت به من اطمینان کامل پیدا کرده بود و طبیعی است که این نامه ها نمی توانست در رفتار او با من اثری بگذارد. اما از وقتی که با کسی به مناسبت صفتی که دلپسند من بود گرم می گرفتم، اینها دیگر مرا را میپرستیدند و حاضر بودند سر من چاپ کنند اما دوستی آنها من عذاب میداد